سنت دانلود تقدیم می کند. میان و جنگ است اینک سکوت مسلمی است اینک بشر اندر سکوت مرگ است حقوق اندر بشر صرف ان شعار است حقوق اندر بشر صرف ان شعار است میانمار آتش و جنگ سکوت مسلمین ننگاس ایناد بشر اندر سکوت مرگ است حقوقان در بشر صرفا شعار است حقوقان در بشر صرفا است به آتش میزنند اجساد مسلم نمی زد دادم نسرت داد مسلم زه هر گ او مادران آتش کشودند بر مادران آتش میان مرآ آتشو جنگاستین سکوت مسلمین ننگستین لک بشر اندر سکوت مربار است خوغ اندر بشر صرفا شعار است وغو در بشر سرفان شوآر شده بریان تن پاک برادر پدر در خاک مدفون است و بیسر شود محو پنا استهن هستی ندارد جور مجوز یک تا بر هستی جور مجوز یک تا پرستی. میان مرگ آتشو شود جنگ سکوت مسلمین من جستینه بشر اندر سکوت مربار است حقوق اندار بشر صرفان شعار است وقوغان در بشر صرفن شوار تجاوز می شود ناموس مسلم شده مرگو و عذاب کابوس مساجد می شود تخریب و ویران به آتش می کشند پیوست قرآن به آتش می پیوست غرآن. میان مر آتش و جنگ استیند سکوت مسلمین ننگ استیند بشر اندر سکوت مربار است حقوق اندر بشر صرفا شعار است مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخان سوزد همه اش آتش و دود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 جهان در سکوتی بهتابر فرو رفته مسلمان بی دفاع میان ماری در آتش بوداییان زنده زنده سوزانده و خاکستر می شوند پس ای مسلمان به با دعایت با آه و ناله هایت با عشقهای سهرگاهت آتش این سین توزان را خاموش گرداند ندا بیا وقت جهاد است ندایت بیا وقت جهاد است ندایت بیا وقت جهاد است ندایت بیا وقت جهاد است